از مشکلات دوستانمون توجه کنیم و برای رفعشو اینا اون مدار که به وظایف شخصی خودمون صدامه وارد نشه به گردن یه واجباتی هست رسیدن به تحت تکپولمون یکی از واجباته این وقت انقل به کار مردم میرسیم که بکار زندگی خودمون و خونه یا خونه یا خونه مثلا درس خوندن یکی از واجبات برای طلبه اگر بخواد از وقت تحصیل و کارهای درسیش باز بمونه از یه باز, کر... باز مونده و حالا حتی به کار مردم برسه خیلی بهش نمیرسه گفتن خصوصا بعضی در اطراف انسان هستن خودشون توجه حل مشکلاتشون ندارن برای اینا وقت گذاشتن برای حل مشکلاتشون باید بیشتر به خودمون برسیم ما مشکلات زیادی داریم فرار میکنیم به جلو میریم به داده دیگران برسیم